عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. متشکریم که در مطالعه مهمترین کتاب دنیا، کتاب مقدس به ما پیوستیم. حالا به عهد جدید رسیدیم و در حال بررسی برخی از مهمترین و مشکلترین تعالیم عیسی هستیم. دوستان چیزهای زیادی هست که باید از زندگی و تعالیم عیسی یاد بگیریم. دعای ما اینه که تسلیم خداوند باشید و هر روزه مطیعانه اون رو پیروی کنید. دا می کنیم گوشی برای شنیدن و قلبی برای پذیرفتن داشته باشید. با هم به درس امروز معلممون گوش می کنیم. لطفاً کتاب مقدساتون رو باز کنید و به متا باب 20 مراجعه کنید و 17 آیه اول رو با هم خواهیم دید جایی که مثل جالبی از عیسی داریم. این مثل به حکایت کارگران تاکستان معروف است. مثل داستانی هست از مردی که ساعت شش صبح میره و کارگری برای کار در تاکستانش عجیر میکنه و با او قرارداد میبنده که در مقابل مزد معینی تا ساعت شش بعد از ظهر کار کنه. در عواست ظهر هم میره و کس دیگری را عجیر میکنه. ساعت پنج بعد از ظهر میبینه ای کنار تاکستان بیکار استاده و به اونها میگه چرا شما کار نمیکنید؟ اونها میگن کسی به ما کار نداده. صاحب تاکستان اونها را هم به کار میگیره ساعت شش همه کارگران صف میبندند تا مزدشون رو دریافت کنند صاحب تاکستان به همه اونها به یک اندازه دستمزد میده وقتی کارگرانی که از صبح در زیر آفتاب کار کرده بودند میبینند که به اونها هم دستمزدی برابر با کسانی که فقط یک ساعت کار کرده اند داده شد ناراحت میشن و شروع به شکایت و غر زدن می کنند مالک تاکستان رو به یکی از اونها میکنه و میگه ای رفیق. من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو، من میل دارم به نفر آخر و اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می کنی؟ چه حقیقتی توسط این داستان به تصویر کشیده شده؟ من گمان می کنم حقیقتی که توسط این داستان به تصویر کشیده شده، حقیقت بسیار عمیقی هست این مثل توبه دم مرگ رو به ما تعلیم میده آیا کسی رو میشناسید که حدود 91 سالش باشه که زندگی بیهوده و فاسدی داشته باشه؟ شاید چنین افرادی به کارهای غیرقانونی به و کارهای مجرمانه انجام بدن و در هنگام مرگ واعزی نزدشون بیاد و کتاب مقدس رو باز کنه و با اونها بگه که عیسی آمد و با اونها در مورد معجزه نجات و بازخرید صحبت کنه و اون اشخاص تبدیل بشن و در نجات ابدی بخوابند درست مانند کسی که تمام عمرش رو زندگی خداشناسانه ای داشته آیا فکر می‌کنید وقتی به آسمان می‌رسیم اونجا کسانی رو خواهیم دید که مثل شخصیت‌های این مثل هستند من کسانی رو می‌شناسم که در سال‌های آخر عمرشون به مسیحی مان آوردند کسی رو به یاد میارم که 89 سالش بود و در اون سن کاملا تبدیل شد او عواقب زیادی رو در زندگیش تجربه کرده بود چون زندگی وحشتناکی رو پشت سر گذاشته بود همسر او از من خواست که بیام و با او صحبت کنم چون تمام مدت گریه می کرد. وقتی سعی کردم علت گریهش رو بفهمم، تنها چیزی که تونست بگه این بود. بچه ها، بچه هام دوتا از فرزندان او در بیمارستان روانی بودند. زندگی اونها از هم پاشیده بود چون پدرشون مرد بدنام و وحشتناکی بود چنین زندگی عواقب به وحشتناکی به دنبال داره. اما اون مرد در سن نه سالگی نجات یافت. شعر بلندی هست که، خیلی طولانیه و نمیخوام اون رو بخونم. اما مضمون اون شعر بحث بین دو پیرمردی هست که در آسمان با همدیگر بحث میکنند. یکی 91 ساله و دیگری 90 ساله بود. بحث اونها این بود که کدام یکی از اونها نشان بزرگ فیز در آسمان هستند. مرد 91 ساله میگفت من بزرگترین نشان فیز در آسمان هستم چون زندگی وحشتناک و پر از گناهی رو تا 91 سالگی پشت سر گذاشتم و در بستر مرگ تبدیل شدم و نجات یافتم. من بزرگترین نشان فیض در آسمان هستم. اما مرد 90 ساله می گفت نه من با تو مخالفم. من در خانواده مسیحی به دنیا آمدم، والدینم خدا شناس بودند و فکر میکنم پنج ساله بودم که تبدیل شدم. من هرگز چیزی جز زندگی مسیحی رو تجربه نکردم و به کاری مسیحی مشغول شدم. در اوایل بیس سالگی شبان شدم و در تمام و عمرم خدا رو خدمت کردم. من نشان فیض بزرگتری از تو هستم چون که تو فیض نجات بخش رو داشتی اما من فیض نگهدارنده و فیض زندگی رو داشتم بحث بالا گرفت بلاخره اونها نتونستند به نتیجه برسن و برای نتیجه نهایی نزد فرشتگان رفتند اونها به فرشتگان گفتند شما قضاوت کنید و به ما بگید کدام یک از ما نشان بزرگ فیض در آسمان هستیم بعد از مدتی بررسی فرشتگان گفتند مرد دوم نشان بزرگتر فیض است چون که او فیز نجات بخش رو داشته و فیض نگهدارنده رو و فیض زندگی رو داشته واقعا خوبه که گناه نکنیم برای خودتون احساس تعصف نکنید که چرا زندگی شریرانه ای نداشتید گاهی اوقات ما نمیتونیم کسی رو با شهادتمون تحت تأثیر قرار بدیم مگر این که بتونیم بگیم ما سارق بانک بودیم و شش سوراخ در بدنمون هست که اثرات شلیکی هست که هنگام سرقت بانک به طرف ما شد وقتی ما از چنین زندگی هیجان انگیزی صحبت کنیم، تاثیر بیشتری می‌ذاریم مردم سالن سخنرانی رو پر میکنن تا چنین داستان رو در مورد کار خدا بشنون. گاهی ما به جوانانمون چنین القا میکنیم که بهتر گناه بکنن و بعد از زندگی گناهآلودشون نجات پیدا کنند چون نجات از زندگی گناهآلود مهمتره کتاب مقدس چنین تعلیمی نمیده. کتاب مقدس تعلیم میده خیلی بهتره که هرگز گناه نکنیم. دیلمودی خدمت بزرگی برای بچه ها داشت. او یک بار یک نحظت بشارتی انداخت و روز بعد یه نفر از او پرسید، آیا کسی نجات پیدا کرده؟ او جواب داد بله دو نفر و نصفی نجات پیدا کردن اونا خندیدند و گفتند منظورت دو نفر بزرگ و یه بچه هست؟ مودی گفت نه دو بچه و یک آدم بزرگ خدا فقط نیمی از زندگی فرد بالغ رو به دست میاره اما وقتی بچه این نجات پیدا میکنه خدا تمام زندگی او رو به دست میاره این احساس مودی در مورد نجات بود این حقیقت داره که دزدی که کنار عیسی مصلوب شد میتونه نجات پیدا کنه در آخرین لحظات و عمرش او رو به عیسی میکنه و میگه وقتی به پادشاهی خودت رسیدی منو به یاد بیار و عیسی اون کلمات زیبا رو میشنوه و با او میگه تو امروز با من در بهشت خواهی بود هرگز برای نجات دیر نیست این حقیقت زیبا با داستان کارگران تاکستان به تصویر کشیده شده در مت باب 20 از آیه 20 تا 28 شما تعلیم زیبایی رو میبینید که از گفتگوی بین عیسی و رسولان متوجهش میشیم خانم زبدی مادر یعقوب و یوحنا نزد عیسی اومد و در مقابل او بر خاک افتاد. عیسی به او گفت چه می خواهی؟ من فکر می کنم که عیسی چیزی از روی بسیرت به او گفت. به این فکر کنید وقتی شما در مقابل خدا بر خاک می‌افتید آیا به خاطر این نیست که چیزی از او یا یقیناً همینطوره. او چیزی میخواست. او گفت خداوندا این دو پسر من پسران ماهری هستند. تو به اونها پسران رد لقب دادی. وقتی به ملکوت خودت رسیدی عطا فرما که این دو پسر من یکی بر جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو بنشینند طبیعتا در اینجا رسولان دیگر از یعقوب و یوحنا ناراحت شدند بنابراین ایسا عیسی همه آنها را جمع کرد و تعلیم بزرگی به اونها داد او گفت ببینید این بازی است که دنیا بازی میکنه دنیا دوست داره که بازی بالا دست و پایین دست بکنه دنیا دوست داره که بازی مافوق و تحت امر بازی کنه اما شما نباید اینطور باشید اگر شما می‌خواهید بالا دست باشید اگر می خواهید در پادشاهی من بالا دست باشید باید هوله و تشتی از آب بگیرید و پاهای دیگران رو بشورید باید خادم باشید تنها راهی که میشه در پادشاهی من بزرگ بود خدمت کردنه حتی خود من به این دنیا نیومدم که به من خدمت کنند بلکه اومدم خدمت کنم و جانم را برای خدمت به دیگران بدم دنیا ارزشها رو بر این قرار میده که چه کسی ثروتمنده تحصیل كردهتره قدرتمندتره و یا جذابتره ببینید این برای مردم دنیا اهمیت داره اونها میخوان به شما بگند که من از شما برتر هستم و شما از من پایینترید من سه درجه دارم و شما دوتا بنابراین من مافوق شما هستم عیسی گفت نه شما نباید اینطور باشید این روش پادشاهی من نیست تمام پیروان عیسی باید از تعلیمی که عیسی در این داستان به ما میده، درک عمیقی داشته باشند تعلیمی که میتونیم به اون نقش ارزشمند خدمت بگیم. عیسی همیشه در این مباحثات کوچک تعلیم میداد. وقتی باب 21 متا رو میخونید، یکی از مهمترین بابهای انجیل متا رو میبینید. عیسی به طور عمدی نبوت زکریا رو به انجام میرسونه. این متن مربوط به ورود شاهانه عیسی به اورشلیم هست. او سوار بر الاغی وارد اورشلیم میشه، مانند سفیری که برای مدتی در کشور بیگانه هست، برای تقدیم استوار نامش با حکومت اون کشور حرکت میکنه. ایسا مدت 33 سال سفیر آسمان بر روی زمین بوده و هر حال او اینجا به طور رسمی و اداری داره استوار نامش رو تقدیم میکنه و با این کار نبوت رو تحقق میبخشه. این کاملا است که او به پایتخت سیاسی دنیا نمیره که در اون زمان روم بوده. عیسیا به پایتخت های گناه مثل افسوس و قرنتوس نمیره. ایساب به پایتخت روحانی دنیا اورشلیم میره. او استوار نامش رو به طور رسمی به رهبران مذهبی قوم خدا میده. اکثر ما با این واقعیت آشنا هستیم که عیسی سوار بر الاغی وارد اورشلیم میشه. اما وقتی باب 21 متا رو میخونید، ملاحظه کنید وقتی عیسی با الاغ وارد اورشلیم شد چیکار کرد؟ او ما رو پاکسازی کرد او به رهبران مذهبی گفت مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده می شود لکن شما مقاره دزدانش ساخته اید او پیام خشنی به رهبران مذهبی داد گفتگوی خصمانه بین عیسی و اون رهبران مذهبی در متا 23 به اوج خودش میرسه گفتگو با شور و هیجان در باب 21 شروع میشه و برخورد تندی صورت میگیره وقتی که اون برخورد خسمانه تر و خسمانه میشه عیسی درخت انجیری رو لعن میکنه و اون درخت خشک میشه. در کتاب مقدس درخت انجیر سمبل اسرائیل هست. درخت انجیر که خشک میشه تمثیلی است که نشون میده قوم اسرائیل به لحاظ روحانی خشک شدهاند. اهمیت پاکسازی معبد، درخت انجیر خشک شده و کلمات خشن عیسی خطاب به رهبران روحانی به قوم خدا نشون میده که خدا در صدد است پادشاهی رو از اسرائیل بگیره. و اون رو به غیر یهودیان بده در این متن حیرت انگیز عیسی از طرف رهبران مذهبی به چالش کشیده میشه و از او اعتبارنامه اش رو میخوان در پاسخ به درخواست اونها عیسی تعالیم بزرگی میده او تمام محوطه معبد رو با تحرکی که مختص او بود پاکسازی کرده بود صرافان رو از اونجا بیرون کرده بود رهبران مذهبی محوطه معبد رو تبدیل به بازار کرده بودند وقتی زائران برای پرستش به اورشلیم می اومدن، این صرافان حیوانات مورد نیاز برای قربانی رو به 75 برابر قیمت به آنها میفروختند. در سال 70 میلادی وقتی رومیان اورشلیم رو فتح کردند اونها چیزی معادل 70 میلیون دلار گنجینه از بازار رهبران مذهبی به یغما بردند رهبران مذهبی تاجران بزرگی بودند عیسی تازیانه کوچکی از ها برداشت و تخت صرافان رو واژگون کرد و حدود پنج هکتار از محوطه معبد رو پاکسازی کرد. مردم از این نیسای فروتن و ملایم ترسیدند و فرار کردند. مردم به خاطر چهره خشمگین او ترسیدند. رهبران مذهبی نزدش آمدند و پرسیدند: به چه حقی این کارها رو می‌کنی؟ چه کسی این حق رو به تو داده است؟ حالا یادتون باشه که عیسی فقط یه نجار بود با ظاهری بد که طبیعی بود اونها از او این سوال رو بپرسند. اونها از او اعتبار نامش رو خواستن. این متنی هست که در اون عیسی یکی از محبوبترین های منو تعلیم میده. عیسی گفت: عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت: پسرم، امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد: من نمی‌روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد: اطاعت کنم، ای آقا. اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کردند گفتند اولی نکته اصلی در این مسل چی بود اساسا عیسی داشت چیزی رو تعلیم میداد که در سر کو تعلیم داده بود مهمترین مسئله اعتراف نیست بلکه عمل هست هر کدام از این پسران به یک چیز اقرار کردند اما طوری عمل کردند که برخلاف اقرارشون بود بنابراین چیزی که بر زبان آوردند اهمیت نداشت مهم این بود که چطور عمل کردند چیزی که عیسی زیرکانه به رهبران مذهبی می گفت این بود. همه شما این اختیار رو دارید که بگید در تاکستان پدرتون هستید و اراده خدای پدر رو به انجام می رسونید. همه شما به این اقرار دارید. به عبارت دیگه اگر صحبت از اعتبارنامه بکنید من این اعتبارنامه رو ندارم. من فقط نجاری از ناصره هستم. اما من در تاکستان پدرم هستم و اراده پدرم رو به انجام می رسونم. این برای من بسیار جذابه وقتی خدا انسان شد با میارهای انسانی او اعتبارنامه نداشت ما در دنیای یه اعتبارنامه ها زندگی می کنیم. وقتی خدا انسان شد میتونست یک شاه باشه یا یک سردار باشه خدا از هر راهی که میخواست میتونست به دنیا بیاد وقتی خدا انسان شد هیچ اعتبارنامه ای جز خودش نداشت او هیچ اعتبارنامه ای نداشت و فقط با اعمال خودش آمد در این عیسی به رهبران مذهبی میگه اقرار اهمیتی نداره بلکه عمل کرد مهمه عیسی همینطور میگه او یحیای تعمید دهنده رو داره که اومد و انجیل پادشاهی و گناهکاران رو موعظه کرده عیسی به اونها میگه بدانید که باجگیران و ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد عیسی ادعا میکنه که تنها کاری که رهبران مذهبی میکنن فقط حرفهای بزرگ میزنند و میگه همه شما مشتی ریاکار هستید و خودتون همین رو میدونید شما در تاکستان نیستید و اراده و کار پدر را انجام نمیدید عیسی گفت: اراده و کار پدر اینه که مژده پادشاهی او را موعظه کنی و گناهکاران رو به اطاعت از پادشاهی او دعوت کنی. از شما می پرسم آیا فقط ادعا می کنید یا اراده و کار پدر رو به جا میارید؟ هر روز این را رو از خودتون سؤال کنید. آیا من فقط حرف میزنم یا اراده خدا را به جا عیسی به دنبال مثل دو پسر، مثل دیگری هم میاره. این حاوی جدی ترین چیزهایی هست که عیسی به رهبران مذهبی زمان خودش میگه عیسی میگه به مسئله دیگری گوش بدید مالکی بود که تاکستان احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت آنگاه آن را به باغبان سپرد و خود به مسافرت رفت هنگامی که موسم چیدن انگور رسید خادمان خود را نزد باغبان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را کتک زدند دیگری را کشتن و سومی را سنگسار کردند صاحب باغبار دیگر دی بیشتری از خادمان خود را فرستاد با آنان نیز به همان طور رفتار کردند سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت اما وقتی باغبانان پسر را دیدند به دیگر گفتند این وارث است بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم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 اکنون مهمترین سنگ بنا شده است این کار خداوند است و به نظر ما عجیب است آیا می‌بینید او به شما علمای عهد قدیم چی میگه؟ خدا در طی سالها انبیایی به اسرائیل میفرستاده بنی اسرائیل با اون انبیا چه رفتاری می‌کردند اونها با ارمیا چه کار کردند اونها با انبیا کوچک ای مثل میکا چیکار کردند تا قرنها اونها با انبیا بدرفداری میکردن؟ حالا عیسی میاد و یکی از ادعاهاش اینه که خدا هست عیسی به رهبران مذهبی میگفت من پسر هستم و شما همین الان نقشه میکشید که منو بکشید اگر بهش فکر کنید می میبینید که عیسی این کار برده حیرت رو برای این مسل داده بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمرات شایسته به بار آورد اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاهان سنگ بر روی کسی بیفتد او را به قبار مبدل خواهد ساخت. بسیاری از محققین بر این باورند که چیزی که ایسا اینجا میگه با درخت انجیر ارتباط داره. اساساً عیسی به رهبران مذهبی اسرائیل میگفت پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که سمراتی شایسته به بار بیاره. یادتونه که در باب 14 کتاب اعداد خدا همون چیز رو به بنی اسرائیل گفت. خدا گفت مرا ده مرتبه امتحان کرده آواز مرا به درستی که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خورده ام نخواهند دید و هر که مرا اهانت کرده باشد آن را نخواهد دید من به اون سطح اراده گفتم و گفتم که اون حقیقت حیرت انگیز صبوری خدا رو که پایان ناپذیر هست بیان میکنه بی قوم خدا برای انجام اراده خدا میتونه به جایی برسه که به سطحی از تصمیم گیری برسه که خدا بگه شما هرگز اراده من رو به جا نخواهید آورد پس من کس دیگری رو برای خودم پیدا خواهم کرد که مشتاق باشه وقتی عیسی با رهبران مذهبی برخورد میکنه همون چیز رو به اونها داره میگه اساسا عیسی میگه خدا مگر فرماندهیش رو منتقل خواهد کرد شما این فرصت رو داشتید که قومی باشید تا برای پادشاهی خدا ثمر بیاریید اما حالا مشخصه که شما هرگز وارد تاکستان نخواهید شد و کار پدر رو انجام نخواهید داد شما هرگز برای پادشاهی خدا ثمر نخواهید آورد این روشیه که عیسی اون بحران رو توضیح میده. تعهد به خدا مانند صخره ای است که شما بر اون میافتید. وقتی بر اون صخره بیافتید، طبق اراده اون صخره خرد خواهید شد. شما این فرصت رو دارید که بر صخره بیافتید و خرد بشید، اما اگر بر سخره نیفتید و خرد نشید، صخره بر شما میافته و با قدرت شما رو خرد میکنه. میتونید ببینید که این کلمات حیرت عیسی در تاریخ کلیسا به کار رفته. زمانی بود که سرزمین مقدس مقر فرماندهی خدا بود. به نظر میرسه که خدا ترتیبی داده که خارج از سرزمین اسرائیل کار کنه. امروز اگر به سرزمین مقدس برید شما سه مسجد بزرگ اسلامی رو میبینید که درست در همون نقطه‌ای که معبد قرار داشت برپا شده. همون معبدی که عیسی این سخنان رو بر زبان آورده. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیل دیگر مقر فرماندهی خدا نیست اگر به سرزمین مقدس سفر کنید، از آسیای صغیر عبور خواهید کرد و به ترکیه و به افسس خواهید رسید. به شما خواهند گفت که مسیحیت در این نقطه به اوج خودش رسیده بود. اینجا جایی که پولس معیزه کرد و اولین مدرسه کتاب مقدس را ایجاد کرد. می بینید که خدا مقر فرماندهیش رو از سرزمین مقدس به آسیای صغیر برده و تا قرنها به نظر می رسید که خدا در اروپا مخصوصاً در آلمان کار میکنه، آلمان جایی که مارتین لوتر، نهضت پروتستان رو به راه انداخت. گفته میشه که وقتی هیتلر بر سر کار آمد، مردم بیش از هر زمان دیگه‌ای و بیش از هر ملتی آگاهی داشتند. آلمان با خدا برخوردی به طریق اقلانی و با قوه تفکر داشت. فیلسوفایی مثل فردریش نیچه به هیتلر کمک کردند که ملت رو با جنگ جهانی دوم به سوی نابودی هدایت کنه. با نگاه کردن به آلمان از این دیدگاه که عیسی تعلیم داد، میتونید به لحاظ روحانی بگید اون ملت این فرصت رو داشت که روی صخره اراده خدا بیفته و خرد بشه اما وقتی اونها برای پادشاهی خدا ثمر نیاوردند صخره بر اونها افتاد و اونها رو نابود کرد بعد از اون میتونید بگید که خدا به سمت غرب حرکت کرد بسیاری بری نقیدند که آمریکا مقر فرماندهی بعدی خدا بود به هر حال پیام آشکار برای ماینه ما درست مثل هر جای دیگری که به نظر می خدا کار میکنه اگر ما هم برای پادشاهی خدا ثمر نیاریم همون صخره بر ما میفته و ما رو خرد میکنه و خدا مقر فرماندهیش رو به جای دیگری منتقل میکنه وقتی از دیدگاه جهانی به تاریخ کلیسا نگاه کنید میتونید ببینید که خدا در نقاط مختلف دنیا قدرتمند بوده چرا خدا مرتبا مقر فرماندهیش رو جابجا جا کرده چونکه مردم جاهایی که خدا در اون کار می‌کرد، به جای رسیدن که میوه نیاوردند خدا تا مدت معینی با اون مدارا میکنه و بعد میگه من بر شما خواهم افتاد و شما را خورد خواهم کرد و جای دیگری کار خواهم کرد کار برده حیرت انگیز این حقیقت اینه که هم میتونه در زندگی ملتی به کار گرفته بشه و هم میتونه در زندگی شخصی پذیرفته بشه همه ما سطحی از تصمیم گیری تا تجربیات رو داریم به طور فردی همه ما باید با این مسئله مواجه بشیم آیا ما بر سخر خواهیم افتاد و در مقابل اراده خدا شکسته خواهیم شد یا اینکه این صخره این بر ما خواهد افتاد وقتی ما به خدا نشون میدیم که اراده او رو انجام نخواهیم داد خدا ما رو ترک میکنه و کس دیگه ای رو برای انجام ارادش پیدا میکنه وقتی این اتفاق بیفته بازنده ما هستیم مسئله دیگری در مورد دوستی در باب 22 متا هست مهمه که همین داستان رو در لوقا 14 هم بخونیم این مسئله بزرگی هست که به ما میگه خدا میخواد با ما دوستی کنه. پیام مسالی که الان دیدیم ثمرآوری بود و این یکی مثلی در مورد دوستی هست. عیسی میگه مردی میهمانی بزرگی ترتیب داد و مردم رو دعوت کرد که به میهمانی او بیان. دعوتها فرستاده شده و الان همه چیز آماده است. او دعوت کرد گفت بیایید و شام بخورید. من تابلویی توی دفتر از یک میز غذاخوری زیبا داشتم که زیر اون تصویر این کلمات زیبا نوشته شده بود. همه چیز حاضر است بفرمایید. در کتاب مقدس قضا خوردن سمبال دوستی هست. پیام این مثل اینه که خدا میخواد با ما دوستی کنه. در مکاشفه 32 میخونیم که میگه اینک بر در ایستاده میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. خدا میخواد با شما دوستی کنه. شما فکر میکنید اگر خدا دعوات مهمانیش رو مهر میکرد؟ همه مردم می اومدن. اما مثل برعکس این رو میگه. مهمانان دعوت شده همه بهانه آوردند و به این زیافت نرفتن. میخونیم که یکی میگه اخیرا مزرعه خریدم و باید برم به اون سر بزنم. شما نمیتونید تعجب نکنید که این آدم ابله مزرعه خریده و میخواد بره به اون سر بزنه. احتمالا منظورش اینه که او بارها و بارها اون مزرعه رو دیده اما حالا مالک اونه و حالا که مالک اونه میخواد بره به اون نگاه کنه. آیا تا حالا چیزی مثل خونه خریدید و وقتی اون رو خریدید به اون نگاه کنید و بگید من صاحب این خانه هستم این خانه منه چیزی که این مثل میخواد به ما بگه اینه که هیچ کدام از این مهمانان نمیخواستند به خاطر چیزهای مادی این دنیا که اونها رو نابود میکنه با خدا دوستی کنند چیزهای مادی دنیا دوستی اونها رو با خدا خراب میکرد در کتاب لغا بعضی ها این بهانه رو میارند و میگن پنج گاو خریدم و میرم تا اونها رو بیازمایم التماس دارم مرا عفو نمایید مثل این میمونه که کشاورزی بگه تراکتوری خریدم و سوارش نشدم یا از اونجایی که مثل میگه پنجوف گاو شاید بهتر باشه که بگیم یک سری تراکتور خریدم و هنوز اونها رو سوار نشدم کتاب مقدس میگه گاو نرد نشانی از کار هست اینجا به نظر میرسه که بهانه اینه خدایا من نمیتونم بیام با تو دوستی کنم چون کار دارم بهانه بعدی اینه دیگری گفت زنی گرفتم و از این سبب نمیتوانم بیایم. به عبارتی میشه اینطور گفت. من با زنی ازدواج کردم و چیزی برای گفتن ندارم. نمیتونم بیام. حقیقتی که در این مثل تعلیم داده شده اینه که خدا میخواد با مردم دوستی کنم، ما اونها به چیزهای دیگر بیشتر ارزش قائلن تا دوستی با خدا. من به خاطر دنیا نمیتونم بیام. من به خاطر کارم نمیتونم بیام. به خاطر زنم نمیتونم بیام. بهتره که به این مثل این عنوان داده بشه. سه دلیل یا بهانه برای مردم که چرا نمیتونن با خدا دوستی کنند مادیات داراییها و شغل یا دیگر مردم وقتی سر سرکوه رو بررسی میکردیم گفتم که معنی لغوی ارزش در فرهنگ لغات اینطور اومده کیفیت هر چیزی که به وسیله اون میتونیم مفید بودن یا نبودن اون رو تشخیص بدیم سودمند بودن مرغوب بودن و یا مهم بودن اون رو به نظر میرسه چیزی که عیسی اینجا میگه اینه که ما با خدا دوستی نداریم چون که چیزهای دیگر رو مفیدتر، مرغوبتر و مهمتر از دوستی با خدا میدونیم. این مردم نباید میگفتن ما نمیتونیم به خاطر کار یا زن یا دنیا بیاییم. اونها باید میگفتن خدایا من نمیام و با تو دوستی نمیکنم چون که به چیزهای دیگر ارزش بیشتری قائلم تا به دوستی تو. کاربرد شخصی این مثل چی هست؟ شما چقدر به دوستی با خدا ارزش قائلی؟ حیرت انگیزه که فکر کنیم خدا میخواد با من و شما دوستی کنه. به دنبال این مسئله بزرگ در لغا باب 14، تعلیم حیرت انگیز دیگری از عیسی میبینیم که به عنوان یکی از سخت ترین تعلیم ایسا شناخته شده. در این تعلیم سخت عیسی گفته اگر کسی پیش من بیاد و از پدر و مادر و زن و فرزند و برادران و خواهران و حتی جان خودش دست نکشه نمیتونه شاگرد من باشه. کسی که صلیب خود رو بر نداره و با من نیاد نمیتونه شاگرد من باشه. در اینجا هم عیسی همون چیزی رو میگه که در مورد دوستی با خدا گفت. اگر میخواهید شاگرد من بشید، من باید مهمتر از دارایی هاتون باشم. من باید مهمتر از تمامی افراد توی زندگیتون باشم و باید مهمتر از زندگی خودتون باشم، چون که اگر میخواهید مرا پیروی کنید، باید صلیبتون رو بردارید و دنبال من بیایید. بسیاری از کسانی که این کلمات رو شنیدند، شخص رقتانگیزی رو دیده بودند که صلیبی رو تا محل مصلوب شدن توسط رومیان می‌کشی. وقتی عیسی میگه اگر کسی بخواد پیرو من باشه باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید این تمثیل وحشت عجیبی در دلهای اونها انداخت این تمثیل تعلیم فیض ارزان و بهای واقعی شاگردی رو برای ما برجسته میکنه آیا پیروی عیسی مسیح هیچ بهایی داره این تمثیل همینطور ما را بر های عیسی متمرکز میکنه عیسی یک سری ارزشها داشت ارزش‌های عیسی را از لابلای تعالیم او می‌تونید ببینید. عیسی به چیزهای خاصی ارزش قائل بود و این چیزها رو به ما نشون داد. وقتی به ارزش‌های عیسی نگاه می‌کنیم، بزرگترین چالش برای ما اینه آیا ما هم همان ارزش‌ها رو داریم؟ عیسی به دوستی با خدا ارزش قائل بود. عیسی مرتبن جایی مشغول دعا بود چون که به دوستی با خدا ارزش قائل بود. با دعا ارزش‌های مسیح و ارزش‌های خودتون رو ملاحظه کنید. و بعد با این سوال چالش برانگیز مواجه بشید و از خودتون بپرسید مسیحیت چه ارزشی برای من داره؟ ما دیدیم که وقتی مردم دعوت شدند چه بحانه هایی آوردن؟ شما چی؟ آیا شما به میهمانی ایسای مسیح میرید؟ آیا شما کلام او رو میپذیرید و اون رو در شرایط خاص به کار میبندید؟ ایسا شما رو دعوت میکنه بیایید و بخورید. دعوت او رو بپذیرید و همین الان به ایسا بگید ایسا من نمیخوام هیچ ای بیارم. میخوام از دوستی با تو لذت ببرم و میخوام خداوند و پادشاه من باشی. من میخوام تو رو خدمت کنم. متشکرم به خاطر محبتت و به خاطر وعده ای که دادی که همیشه با من خواهی بود و مرا ترک نخواهی کرد. کمک کن که هر روز در راههای تو گام بردارم. عزیزان اگر به همراه معلممون این دعا رو کردین لطفاً به کسی بگید یا به یا رهبره گروه مطالعاتیتون اونها میتونن شما رو تشویق کنن و به شما کمک کنن که در ایمانتون رشد کنید با خودتون عهد ببندید که پیرو وفاداری باشید و ترتیبی بدید که جلسه بعد در ادامه بررسی عهد جدید با ما همراه باشید امیدواریم که فیض و آرامش خداوند من عیسی مسیح با شما و بر شما باشه آمین